ما بحث نداریم که در هر ما صحبتی بکنیم ما باید این جنبه‌ها کنیم ما باید همین تمام جمله‌ها که معنی دموکراسی چیز دموکراسی تعریف فاصله است شریک هم فاصله است دموکراسی اسلامی جای خاص ما باید الان یک توضیح اینا کنیم بکثر اوقات اصلاح می‌کنیم که این دموکراسی که ما داریم این دموکراسی تمام از اول شروع نهضت همه حرف خود را صریح بدون ابهام بیان کرد از اول امام رژیم تاقوطی موروسی استبدادی سلطنتی را نبی کرد دولت نداره لیکن دولت غیر قانونی بود برد تو غیر قانونی, تو غیر قانونی عشی اینی که نظام اسلامی نظامی بر مبنای اندیشه اسلام و ارزش های اسلامی باید سرکار بیاد امام این رو به سراحت بیان کرد فرد فوشی دلیم نکرد من دولت تاین میکنم من به فشتبانی این ملت دولت تاین میکنم تو دهن این دولت من تو دهن این دولت میدنم در قضیه مقابله با شبکه سهیونیستی خطرناکی که بر دنیا میخواهد حکومت بکند در مقابله با این امام هیچ ملاحظه ای نکردن اسرائیل دشمن بشریت دشمن انسان امروز که ما بخواهیم و ملت ما بخواهند تمام آنها ها بزوالدان های خواهد اینی که ما با نظام سلطه مخالفیم امام بر این هیچ پرد پوشی نکرد نظام سلطه هم در شکل کامل خود تجسم به تجسد پیدا میکنه در رژیم دولت کنونی ایالات متحده آمریکا. لذا امام سریحا در مقابل آمریکا دلوم. موزه گرفت شیطان بزرگ که امریکاست شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می کند و هیاهو براهت دفتر راز مندگاری نظام جمهوری اسلامی بر ریل انقلاب و بر خطوط اصلی امام بزرگوار همین سراحت بوده است هیچ نبایستی این شفافیت را این سراحت را از دست داد در مقابل مخالفان در مقابل دوستان در مقابل دشمنان موازه جمهوری اسلامی باید موازه شفافی باشد